در این برنامه که به مناسبت نوروز و آغاز سال جدید تهیه شده چند گزارش خواهید شنید در رابطه با نوروز و برگزاری مراسم اون در سوئد و همینطور گفتگویی با دکتر علی حسوری ایرانشناس درباره تاریخچه نوروز و اینکه از چه زمانی و به چه دلیل آغاز شده؟ بخش کوتاهی از این گفتگو رو در این برنامه میشنوین اما در صورت تمایل میتونین از همین الان کامل اون رو در سایت برنامه بشین اشق منی لاله روی من همچون بهار آمدی در گل شن آرز روی من چون گل بهار آمدی Golvecha manchón de le mantel beton. من از دردم اوغویی من جور غم جفایتو میکشم از برای تو دیگر چه خواهی عشق روی من امکن بهار آمدی در دوشان او من چون گل به آمدی گل به چمن چون دلمند دل به تو بسپار چند روز و یا شاید چند هفته مونده به نوروز مردم برای خرید وسائل صفره هفتزین، شیرینی و آجیل نوروزی به فروشگاه هایی که از این وسایل میفروشن میرن و خرید نوروزی میکنند. به یکی از این فروشگاه ها در شیستا در استوکلم رفتیم و با چند نفر که برای خرید اومده بودن حرف زدن. Duhastim ka ili mohem meke in su na tou zande negadorimo. Paćo š moćiš č soje tu ne šemo. Man da se name.Šemo čan soje tu. Haft. Midunja se no rusćje. Šo moći š nam. Či korme koje ide no us tohu na tu izmićinim haft to za im mođim mo jod Gertim Ha sin ćje. Wlićete u svoj za u svoj jednostav? Mysliko, da学i zaprami se i množen nane omogole vati ljudi. Vani u probimo vaći zvorema kogličin. Oni paši smo smo revijipi zvoji. Grazivomžem skorala. Shledi imam dedan, da sjedni d Stickovari će 말고 da živije i doba doda yana khallur. Merci azizam. No mochi aga. Saleno u be tafsim michinim mirin? do mehman سال بخوبی داشته باشید. نوروز خود به عرض شما. باشی. شما چه خانوم؟ شما اینجا جشن می‌گیرید نوروز. سال بلده. سال نو رو چه می‌کنید؟ بچه‌ها هم همه هم میان خونه ما. یه شام نوروزی با هم می‌خوریم. هف سیم می‌چینیم. دیگه In عجی پسته داره عرض کنم گرزو داره بادوم داره فندق داره و باسلغ داره و با انجیر بسیار سویدی ها چقدر میان اینجا خرید میکنن؟ یعنی الان برنامه های نوروزی اینا سویدی ها میان خرید میکنن؟ آره آره چرا میان؟ میان. میان بله سویدی هم زیاد میان افغان ها چی؟ افغان میان چرا افغانا. ایرانی که دیگر آره چی بیشتر میخرن؟ بیشتر چیز نوروزی میخرن از ساله آجل شیرنی اینا شیرنی آجل و تنقلات نوروزی سویدی ها رو هم وسوسه میکنه Bestvali sviđaren S mouldarč architecturali raföšan će pot kostno savnaNoville? V statistically da je lili je gail i litenčka igrala u respektive za agua. I liliас a zw timbr jer da je stopped kolios gorijos. びuk i širnje? legendтаки, večno. Premotore popu ztip immer hole da je kut je dobri accelerated by the names of them Yeah Japanese people just wanted to let their own Afghans, both of them are here? Yes, from what we ibracno like now 高ィン, sterbon, that is great acere, sujedi teakvi, kurdo, jem...? ianoni angst. drag variations doъjssili teakv kao iz compadraš teakv externi, ki SO Everyoneаки tra súper sujeli, kurdo, aqui и Tome Zrичес queste si aja? Yes A alla سپاسگزار ازتون به کارتون برسین مشتری دارین الله ممنونم مرسی خواهش می‌کنم تو <تصفيق> می اعت 6 و 14 دقیقه و 23 ثانیه که لحظه تحویل ساله دقایقی بیشتر نمونده. کنار سفرهی حفسین تون بشینین اگه تخم مرغ پخته آماده کردین نصفشو بخورین تا نصفگهش رو هم بعد تحویل سال بخورین و آماده بشین برای اعلام آغاز بهار و سال جدید. تا که شو دونی شولی دوری سمنو رسم رو تازه بکن چه زلزله در زمونی دوری سمنو از گوش ها صداش میاد صدای عید باهاش میاد از گلوی قRNAی دور صدای آشناش میاد از اونور سامانو، آي سامانو، مالي ويه هافسم، نوروز روز نو و روز خود رو نو کردنه روز جامعه نو پوشيدن با رنگ دل و احساس رو عوض کردن نوروز فرصتی برای دیگر شدن از دست ندیم زندگی شکسته و خسته پرواز کرده از یاد این نشسته تقوی حسيه ما چطور تخش سفیده رغنوره همون آغاز سال 1391 خورشیدی نوروزتان پیروز سال 1391 خوشیدی رو به همه شما عزیزان ایرانه ها افغان ها و تاجیکا و تمام کسانی که به برنامه گوش میکنن تبریک میگیم من شخصا زینت هاشمی برای شما شنوندگان عزیز که این 21 کمین سالیه که هنگام تحویل سال در سوئد باتون با بودم آرزو می که سال جدید برای همه پر از سلامتی موفقیت و سالی پر از صلح و آرامش در ایران، افغانستان و جهان باشه. سال جدید خورشیدی‌تان پر از لاله و لبخند و خورشید باد. دکتور محمد اکرم اثمان از چهره های سرشناس فرهنگی و سیاسی افغانستان در سوید همیشه در برنامه های نوروزی پجواک حضور داشته و پیامش رو به گوش شنبندگان ما رسونده. ضمن سپاس از او پیام امسالش رو می شنویم. از سمیم قلب نوروز باستانی را با به تمام مردم منطقه ما مبارک باد عرض می کنم. هرچند مشترکات ملتهای ما بیرون از حساب است اما هیچ کدام قدر و منزلت نوروز را ندارد ما با نوروز با طبیعت همدل و هم نبا می و به تردید در قیاس با ملل و نهل دیگر این یک حسن انتخاب است و می که پدران ما از ظرفیت روحی عظیمی برخوردار بودند و می که به پیشواز سال جدید چه آینهای را در نظر بگیرند و تجدیل کنند در وضعیت بحرانی فعلی که به اصطلاح از آسمان سنگ می و مردم کشورهای ما با دوشواری های عدیده مقابل میباشند باشند آرزوی ما این است که با حلول نوروز و بهار دیگر دشواری های ما کم شود و با رستن سبز و گل درخت امیدهای ما با بار بینیشیند و آفتاب تالی از بام کشورهای ما طلوع کند برای تمام هموطنان و از زبانان ما ارجوی خیر و سعادت میکنم و خجسته نوروز را تهنیت میگویم اگر با ما رفتن به بعض دوستان چون من میان پوششی روشن به پوک و حریر آمد دوزلف طر بیزش گل ننگین سین ریزش گل سریر خفت و فیزش گل ببین چه دلپذیر آمد هوا حریر آبی شد. کران آف تابی شد مگو حکایت از باران که دل ز گریه سیر آمد ز کوخ پرس و دامانش چه رفت بازمستانش که از تیغ پستانش تدار جوی شیر آمد کار عشق پیوسته دقرار پیوسته رمیده بودم خسته که ناگهو ندانسته روحت تو در ذمیرم باهار اگر چاوند اوراجdemo یزاش جوان دارد به سال اگر چه پیو با سپاس از سیمین بهبهانی بانوی غزل ایران نسیم خاک کی گوی بهار می دهد زار گوی تو گوی بهار می دهد بهار می دهد شو دستهای کنار هم پجادید درو دشانی امیدواریم سال جدید سال بهتری برای پناهجویان به ویژه پناهجویان افغان و ایرانی باشه که با مشکلاتی در سوئد روبرو هستند. برخی از اونها مجبور شدن به زندگی مخفی رو بیارن و شاید نتونن مثل بقیه نوروز رو جشن بگیرن. امیدوار باشیم که از مشکلاتشون کم بشه و اونا هم بتونن نوروز و زیبایی های رو احساس کنن. سفری گله ی تو بوی بهار میدهد تو ای که بوتر هر آن قرار به که های بوی تو بوی بهار میدهد برای من که جز خضاو ندیدم در این جهان مو با مو به می برای نوروز از چه زمانی آغاز شده؟ میدونیم که از قدمت زیادی برخورداره اما زمان آغازش چندان روشن نیست. در این مورد گفتگوی داریم با دکتر علی حسوری استاد ایران شناسی. چنان که می دانیم نوروز یکی از کوهندترین جشنهای ملی ماست. و اون مربوط می شود به زمانی که ایرانیان توانستند سال خرشیدی رو بشناسند و اندازه گیری کنند. این تاریخ به اندازه کوهند است که در آثار صرف فرهنگی ما اون رو به پادشاهان سیار کوهن و اساتیری یعنی مثلا جمشید نسبت میدن. او پادشاه تاریخی نیست، پادشاهی است در اساتیر ما و بنابراین نسبت نوروز به یک زمان ناشناخته است. زمانی است که از نظر تاریخی تعیین اون معین نیست. اما ما میدونیم که از چه زمانی تقریبا نوروز رو ضبط کردند و بعد از اون تعیین نوروز با محاسبه صورت می‌گرفت و این رو دانشمند ایرانی زبیح بهروز پیدا کرد که در 1725 قبل از میلاد یا 2346 سال قبل از هجرت پیامبر قبل از تاریخ هجری ایرانیان در زمان زردوش و به وسیله زردوش توانستند که دقیقا اون نقطه تحویل رو شناسایی کنند و از اون به بعد است که در واقع تقویم ایرانی شکل میگیره و نوروزها هر کدوم دیگه سر ساعت معین تحویل خودش جشن گرفته میشه این وضعیت ادامه پیدا کرد تا در دوره شاهانه حامنشی دیگه نوروز رو با آداب و رسوم بسیار مفصل می, دا می که در تخت جمشی جشن می گرفتن و این جشن بیش از اون که یک جشن در واقع ملی و برای شادی باشه بیشتر جنبه مذهبی داشته برای این که در واقع شناخت سال برای مقاصد دونیوی این همه دقت لازم نداره شما براتون اهمیت نداره که مثلا فرض کنید که میخواهید گندم بکارید این رو در مثلا فرض کنید 182 مین روز سال بکارید یا 185 مین روز سال یعنی در پاییست یه روز دو روز پنج روز این ور برای کار کشاورزی اهمیتی اصلا نداره در حالی که این فراعز مذهبی است که باید خیلی دقیق و به موقع انجام بگیره این است که در واقع اساس تقویم ما نه تنها تقویم ما بلکه بسیاری از تقویم های دیگر هم مذهبه یعنی تقویم رو گرفتند ابداع کردند یا قرارداد کردند برای اینکه که بتوانند جهش های مذهبی رو درست و به موقع مثل هم هر سال بگیرند و اختلافی در زمان گرفتن جهش ایجاد نشه یا این که برحال در آغاز چنین بوده باید حداقل در آغاز چنین بوده الان ما دیگه نوروزمون جنبه مذهبی نداره الان فقط یک جشن ملی است عمده شاهانه ایران در طول این تاریخ نوروز رو جشن گرفت سنت ارزگار ما که وضعیت دیگری پیدا شده و الان دیگه این جشن یک جشن بسیار خودجوشی است و نیاز به دخالت دولت ندارد و مردم عادت کردند مخصوصا با این حساب دقیق خرشیدی که ما داریم هم لحظه تحویل سال و هم روز اول فروردین و هم جهش های دیگر بعد از اون رو بگیرم بخشی از توضیحات دکتر علی اصوری بود درباره تاریخچه تاریخچی نوروز همون طور که در آغاز برنامه هم گفتیم بلندترین گفتگو از همکنون روی سایت پژواک در صحفی نوروزی قرار داره و میتونی اونو در اونجا بشنوین برآمد به کام دوستان و وقت مورای گودت این سال همسول مورای گودت این سال همسول غم اون بودت روز هم امروز بار یا زیر باران چه کنی؟ با کف زدن برگ چناران چه کنی؟ ای بهکرد حرام شادی و خنده به ما با قهبخ گل به چه کنی؟ گرمی شد از این بیش ستم می کردید. افلاق سیاه پوش غم می کردی. می گفتی روسری سری به بندت خرشید چادر به سر بحار هم می کردید <متصفيق> شعری شنیدین از اسمایل خویی شاعر سرشناس معاصر با صدای خود او که برای پجواک خونده بود و شب چجور می بینید؟ ا من خودم یه از مادرم یاد گرفتم همیشه خیلی زنه خوبی بودش و منظم و همیشه سبزه. سبزه رو یک ماهو شروع می‌کرد تقریبا. من می من می بعد منم این راستی میخواهم من فکر کنم یه مقدار بستگی فردی داره یعنی بعضی ایرانی‌ها اکتیو هستن در توزیع سنت‌های ایران بستگی به شخصیت‌های افراد داره و بعضیام نه مختلف دیدن کم بخودم الان مسئله ایران Агаед аван ما زیات мибиним ке جاشن میگیرن نوروز رو ولی شما فکر می‌کنین پیام نوروز رو چقد بهش توجه میشه من فکر می‌کنم پیام نوروز به نو شدن سال بهار خیلی تغییرات طبیعی صورت میگیره و اینم به هر حال از اونجا میاد و این در واقع همون جایی که خیلی از تاریخ دانا میگن این راز راز بقای مجموعه که به نام حالا ایران ما میشناسیم زیر فرهنگ این مجموعه بزرگاستش و این روزیه که به هر حال در طی هزاران Dotim se posko zarada moram sole norobe š mova ham mi dutono že na vande go name veho mu da abri migan. se posko zarada se pos. Čamo fe mi koninke čekad az ironiho a on ho s fer mi kon nam be mohtavovo pajomenouz pajomen u ruru mo čekadar nazar e te al muride noruz pish o pish noruz o tabrik migam va omidvaram ke vagan amsal sal besyar khub sal solh o piruzi sal aramash baraye hameye mardom jahon be khosus keshvaram va dar morede in har rus masale noruz va mohtavaye noruz gostardetar mishe va معروض هر سال من اونطوری که خودم احساس می‌کنم و اطرافیانم هم می‌بینن با محتوای نوروز که منظور شماست بیشتر آشنا میشن و پیام نوروز که پیام صلح و سبز و بهاری بیشتر به اهمیت میده و هر سال Fikr dane. Mohab pat bedi garone. Ho kardane a kore o jo mo be mohtavo je no ruzam fe mi koim đodoja zavo jerenoluz. Be gostade gje su pakeš mi koim be nazaremannja. ali o mi dvoramke in to vaše. O mi dvoramke me sezenndegin na ruzam har ru novoše, akoraram noveše. đozin man ć se dijem tu Č Orezzuji da in da in zamine. Pogan orezudaram emsol, hususanke dastokul mastam sole be si on nuji bo še varje. tam ome zeh no. Hususan zehno je ironi va sole ahhlloh boše. Vogan mo i runjo bi hotelenke hode munotaspit konim, Nahhom da jaron Pošovasrich et durazna, a matchuna, bo showna, das soja soy, از آنچنان قدمت و اهمیتی برخورداره که از طرف سازمان ملل هم به عنوان یک روز جهانی شناخته شده اتحادی اروپا هم امثال اعلام کرده که نوروز رو روزی رسمی میشناسه و بزرگ میداره اما با این حال و با وجود اینکه که ملیت هایی که نوروز رو جشن میگیرن در اروپا و به ویژه در سوید زیاد هستن برخی از اونا گله دارن که این روز و مراسم اون باستا به چندان زیادی در رسانه این کشور پیدا نکرده این موضوع رو با دو جوان ایرانی که هر دو در کانال های مختلف رادیو سویت کار میکنن در میون گذاشتیم. اونا مهمان برنامه امروز هستن. خانم آمیتیس به برنامه نوروزی پژواک خوش آمدین. خیلی ممنون خیلی خوشحالم اینجا هستم. شما سال هاست دارین این کار رو انجام میدین و من میدونم که خیلی از ایرانی سوئد سویت که شما هستین. سپاس گذارد بهتون خب خانم آمیتی سال نو رو بهتون تبریک میگیم سال نو شما مبارک مرسی خیلی فقط بگم من فارسی مثل شما خوب نیست امیدوارم کسی گوش میکنه اصابش خون نشه تا اینجا که خوب بود خانم آزوردگان شما خب توی برنامه متروپول دارین کار میکنین پیتری پیتری و کانال استوکلم که اسمش از متروپول 93 ممائز هشت بل. شما به حال توی رسانه سویدی دارین کار میکنین نوروز رو چطور میبینین طرحش توی رسانه های سویدی؟ چقدر بهش میپردازن؟ به خصوص رادیو من البته 5 سال کار رادیو انجام دادن به نظرم یاد هر سال راجبش صحبت کردن یه سری برنامه هایی اجرا کردن یه سری رپورتاج داشتن و احساس میکنم که سویدی ها احساس میکنن که نوروز این جشنی که ما ایرانی ها داریم براشون خیلی رنگ رنگ و جالب به نظر میاد به نظرم میاد که خوششون میاد و دوست دارن یه ذره حالت اکسوتیک داره دوست دارن بدونن چی به چیه و به نظرم میاد که خوششون میاد یعنی شما کافی میدونین تا این اندازه که بهش میپردازن؟ من سال 86 اومدم سوئد یعنی در واقع 25 سال پیشه و یادم میاد که اون موقع های یه برنامه این بود به اسم موزایک تو که در سفرس تلویخون کانال یک یا دو پخش می شد و یادمه که به خاطر وجود این برنامه مخصوصا راجب نوروز بیشتر انگاره صحبت میشد اون موقع ها تا الان هم قبلش هم روزش هم بعدش و برنامه های مختلفی بود که راجب نوروز صحبت میکردن من رادیو زیاد گوش ندادم ولی تو اونجایی که من احساس می‌کنم احساس میکنم یه ذره بیشتر راجع بهش برنامه اجرا کردن در سوئد یعنی کانال‌های سوئدیو خبرنگای غبانگاری سوئدی این در حالیه که سازمان ملل نوروز رو به رسمیت شناخته و اتحادی اروپا هم قرار بود که نوروز رو جشن بگیره من البته نمیدونم احساسم درسته یا نه ولی خب یه احساس احساس میکنم که ایرانیایی که در سوئد هستن الان مخصوصا بعد از اتفاقاتی که سال 2009 تو سوید و در ایران اجرا شد احساس میکنم الان بیشتر احتیاج دارن به همبستگی و همدیگر رو پیدا کنن و دور و بره هم باشیم ما که اومدیم سوید خب همه یه سری بار داریم به خودمون بار بار به عنوان ناراحتی و عصبانی و ناراحت هم بلاخره اون موقعی مدتی بود سال 90, 90 95 این تورا همه جورای شاد بودن جشت بود همه چی ولی و بعدش اتفاقاتی افتاد مقصد سال 2009 و فکر میکنم الان از نظر پابلک سرویس که سر و اسفته باش کار میکنن و بیشتر الان منظورش بیشتر الان میتونه اجرا بشه که بتونن نیازو، نیاز, نیاز, نیاز کسانی که اینجا زندگی میکنن رو برآورده کنه آدمای از کشورهای مختلف بله. و اینطور. اتفاقا خانم بیرگیتا اولسون هم هفته پیش تو مراسم چهارشنبه سوری اشاره کردن که در اینجا ما باید بیشتر به نوروز بپردازیم دیگه ولی خب شما که هستین منم که اینجا وایسادم بله <تصفح> <تصفح> خوب میشه بله خود شما برنامه نوروزی هم دارین در رادیو متروپول بله, بله برنامه نوروزی ندارن ولی اون روز را صحبت میکن صحبت میکنن, صبت میکنن و چند آهنگ های مثلا ایرانی no, روزی میذا بله امانه. ولی برنامه طولانی نیستش صحبت میکنن آهنگ میذان برای چهارشنبه سوری هم من شنیدم شما برنامه داشتین بله رفت، همکاران رفتن اینجا کونگکس و گوردن ایرانیا جمع شده بودن لایو از اونجا پخش می و صحبت میکردن با ایرانی ها و بیچار ای همکارم یه پسر سوئدی اسمش رسموس از این پرید از روی ناتیشه ها. این کارو کرد اتفاقی هم براش افتاد نه من میترسیدم بخواد چیز چیزیش بشه ولی <تصفح> ولی ولی تونس گفتم بیچاره فکادم حتما اتفاقی براش چاله بود گفت یعنی این چیه بعد اومد برگشته بود بودود گرفته بود بعد من ناراحت بود بودود گرفته بود ولی من بهش گفتم ببین این بویی که تو الان داری می‌دی برای من یادگار بچه گیامه بعد از چهارشنبه سوری همچین بویی بود همم هم همین برو میدادن وقتی می تو خونه شام می‌خوردن همه می‌خاد یه سوال خیلی خصوصی تر بکنم ازتون چند سالتون خانم آمیتیست؟ در اصلا خصوصی نیست اصلا سی و یک سلمه یولی میشه سی و دو سلمه. من ازتون سپاسگزاری میکنم و براتون آرزو میکنم مرسی. که سال بسیار خوبی داشته باشین. همچنین ممنون ببخشید من فارسی بد بود ولی خوب, خیلی خوب بود من فکر میکنم شنوندگان با ما هم عقیده باشن. شما فارسیتون بسیار خوبه. خیلی ممنون مرسی. منم سال نو رو به شما تبریک میگم. سال بسیار خوبی داشته باشین. سال نو تبریک میگم به ایرانیها و افغانها که گوش میکنن. سالانوتون مبارک. مرسی که تونستن بتونن بیام اینجا پیش شما. ما ازتون سپاس سپاسگزاری که اومدین به این برنامه. و حالا گفتگویی میشنوین با نگار یوسفی، مهمان دیگه برنامه که عنوان خبرنگار آزاد با ایکوت بخش خبر رادیو سویت همکاری داره. خانم نگار یوسفی، چی میتونین راجع به عید برامون بگین؟ عید واسه من بهاره و دلخوشی هستش، آدم به فکر خونواده هستش، به فکر ایران هستش و هرچی که قدیمی هستش، کوهنه هستش، آدم می دور از نو شروع می کنه. این عیده واسه من. سبزه و اینام دارین شما؟ بله، من سبزه خودم نذاشم اما مامانم واسه همیشه یکی میاره. حالا شما با پیه تمکاری دارین؟ من بخواستم ببینم که به نظر شما عید نوروز چقدر انعکاس داشته یا داره در رسانه های سوئد برای نمونه رادیو یا روزنامه ها؟ بیشتر روزنامه هستش، تو رادیو خیلی کم هستش به نظر من، یعنی رادیو پجواک خب بله هستش، اما تو, تو تلویزیون یک کم بیشتر میبینم، بیشتر تو روزنامه هستش، مثلا توضیح میدن چاشن به سوری چی هستش و از این جشن ها هستش تو شهر، و هر سال دوستای سایدی من هر سال که میشه بیشتر و بیشترشون دارم میرن چارشم به سوری خودتونم میریم؟ من بعضی اوقات امسال نرفتم واسه اینکه من سرما میرم کمرم درد میگیره هنوز گرم نشد آخه هوا چقدر توقع داری به عنوان یک ژورنالیست، برای نمونه به مسئله نوروز بیشتر بها داده باشه بشه تو رادیو باید بیشتر بها داده باشه چون که عید فتر هستش که خیلی می نویسن ازش استقبال میکنن اما عید نوروز و مثل عید فتر زیاد بزرگ نمیکنن کنن شما اشاره به عید فتر کردین حتی توی فروشگاه های عادی شیرنی های نوروزی زیاد ادم نمی بینه فقط فروشگاه های ایرانی و افغان هستش که آدم بله وقتی ک هستش گوشت حلال بیشتر میارن تو فروشگاه ایکا و کنسوم کوپ و این چیزا ای اینو فروشگاه اما مثلا وقتی عید نوروز هستش شیرینی های ایرانی ما نداریم باید بریم شیستای اینکه جای دیگه این ها رو بخریم خود شما مثلا هیچ وقت پیشنهاد دادین که بخواین برنامه نوروزی درست کنین فکر میکنین استقبال میشه ازش می‌گくん این برنامه‌ای که من کار می‌کنم من بخ اخبار اکوت کار می‌کنم نمی‌شه آدم این پیشنهاد بده واسه اینکه تو دنیا هزار تا اتفاق می‌افته منم تو بخش خارجی هستم نمی‌تونیم مثلا اونو رو مثلا اتفاقایی که تو سوریه هستش نمی‌تونیم اونا بذاریم کنار بعد مثلا رو بذاریم اما برنامه های دیگه هستش توی پیات که می‌تونن بذارن حتماً برنامه‌ای مثلا پیات مورون می‌تونن بذارن صبح نوروز اروپا می‌تونن صحبت بکنن از این برنامه حرف نوروز میشه من دوست ندارم کارو کنم. دوستانم برم پیش خانواده هم چند سالتونه شما خانم نگار؟ من 35 سال همه دیگه بعد شما چند ساله بودین که آمدین به سوید؟ من 19884 هشت سالم بود اومدم سوید چقدر از عید یادتونه؟ عید ایران؟ زیاد یادم نیست از عید واسه اینکه زمانی که ما ایران بودیم خیلی زمان سختی و زمان جنگ بودش و همه چی ریخت پاش بودش زیاد زیاد خوشحالی نداشتیم ما راستش بگم واسه این که مردم هم زیاد خوشحال نبودن زمان خیلی سخت بودش تو ایران من زیاد عید یادم نیستش من بیشتر جنگ و این چیزا یاد دارم متاسفانه زیاد عید من یاد ندارم دوست دارم به همه هموطنان من توی سوید عید نروز و تبریک بگم و امیدوارم که ایران جنگ نشه که ما همه بتونیم بریم اونجا و پیش خونه وادم. سپاسگزارم ازتون خانم نگار یوسفی. بهار هدیه طبیعت است که با لبخند نوروزیش پیام زندگی نو و کار پیکار نو را به جهانیان ارمغان میدهد. انسان هرچند جز طبیعت است، اما همواره با طبیعت سرستیز داشته که خداوند به همین دلیل او را اشرف مخلوقات نامیده است. انسان از گردش ایام راز زندگی و طبیعت را آموخته و راه مهار کردن او را دریافته است، از گردش خورشید و گذر ایام، فصل شادی و تلاش را از روزهای سرد و جمود زمستان فرق کرده و دریافته است که موسم بهار را به شادمانی و جشن و سرور آغاز کند و خزان و زمستان را به امید فرارسیدن بهار انتظار بکشد چون در همین ایام طبیعت دامانش را برای آدم پر از سبزه و لالب و شگوفه می کند از امین رو جشن نوروز را می توان از باستانی ترین جشن های فرهنگ بشری دانست اما چی دلایلی باعث می شود که برخی از گروه های مذهبی با این جشن مخالفت نشان بدهند رفتم به خانه سید حسین ازغری شخصیت روحانی و مسئول امور دینی افغان ها در استکهلم تا این موضوع را با او در میان بگذارم فضای خانه او پرستفا و سمیمیت بود و شادی نوروزی از همین حالا در آنجا محسوس بود او در مورد مخالفت مذهب با نوروز گفت البته متاسفانه بعض یا بنامه دین یا بنامه مذهب مخالفت میکن ولی بقیه ما اصلا درست نیست چرا که در منابع معتبر دینی هم تاکید برای تجدید از نوروز شده میشه بگه این در کدام منابع معتبر دینی و شخصتر کدام چیزی کفتم میدونم؟ بله، امام جفر صادق میفرمه که روز که خداوند زمین ایجاد کرد نوروز بود روز که آدم توبه شب قبول کرد خداوند نوروز بود و روز که کشتی نوح نجات پیدا کرد نوروز بود تاریخ نزدیک است که روز که عید قدیر خم بود که حضرت محمد صلی الله علیه و آله حضرت علی را به جانشینی خود قبول کرد نوروز بود روزی که خلافت بعد از دوره عثمان بر حضرت علی علیه السلام باز نوروز بود و امروز در افغانستان شما وقتی میبینید که در مزار شریف به یاد بود مولا علی جنده بالا میکنن الان مولا علی را بالا میکنن دقیقاً به خاطر است که بیشتر به نام نوروز که تخت نیشینی حضرت علی علیسان تجدیم میکننش پس ای که یک اده به نامها ها یا به بحانه های مذهبی بایی جشن مخالفت میکنن اونا چی استناده بر ازگاب دارن؟ اصلا ندارن ندارند به خاطر که ببین خود دعای نوروزی یا اعمال نوروزی که روز نوروز باید غسل بکنین لباس پاکیزه بپوشید و شکرانه یوم آمدن نوروز نماز بخونید و از همه مهمتر خود خودمی دعای نوروزی که یا مقلبا القلوب و الابصار یا مدبر الليل و النهار یا محول الحول و الاحوال حظ الحالنا الى احسن الحال خب این مشخصا بر ما میده که مذهب یا دین احترام خاصی بر نوروز داره این که بعضی به نام دین امروز مبارزه میکنن برای این نوروز کار بچیار غلطه میکنن یعنی مبارزه کردن با نوروز یکی از آیات، یکی از دلائل، یکی از نشانهای خلقت خداوند نادیده گرفتن این مخصوصا که ما معاد نادیده گرفتن یعنی زندگی پس از مرگ نادیده گرفتن است خداوند نوروز خلق کرد با وجود آورد که ما ایمان ما کامل شد که بعد, بعد از مرگ زندگی هم هست Cinači smo bimbiim kje drekti Khojšk Dobarapas Hacil mito Zemine terak korda na bakar Šovat srba srpur Gul u sbzazar Bibiň kudrati ra Kje fosil bahar Brun mekonud Gul zahar šak sar Bia ta zanim raha Vosilu čaman Šov mst Bui gul Nastaran Aja šehr Ašar jez kudima Bude Ia qismet Dviva Dviva Kudrat Laiazali Ru bimbiim kje Yuhi, Yumit, Yumitu, Yuhi Khoda vrnjegovir, mi mi mi mi mi ránam Mo zinđa mi kona Zinđa mi mi mi ránam Dakikajmo mi mi ránam Dekijel, mi mi ránam Dari navorozu kje čegonan Hmi proseso tajlil mi še zim Nesl 9 khanava da je kodita Tajlil navorozu Buna bila navoro Tajlil navorozu Alakamandiju da či hod je Paabandiju da či hod je Dari navorozu Faza, mutaoslfana Sari vakti navorozu Mala koščuš ke dar fazaye kuchek khanevadi khod hat daghal kari ke mitonim bokonim daram bashim va hat daghal kari ke miton libas mali khodamoro bepushim hatman qazaye mali va in ma khahesham ast tamam dostay ke man mishinam mishnasam sohbat mikonam masalan qazaye sividania dar jashnay sale Am meho nameša dojem Hat to bar nome televizije Kaljankara, da raz naro boja devina. ježbahtom باشه رد نباشن اعتراض میکنن میگم مثلا شما تنبریتون اومد رود نوروزی رو چهار روزه که اینقدر زیرکان هم متوجه هستن که چی از روی سفره نوروزی کم است فعالیتشون در پروسه چطور است بسیار زیاد است سم میگیرن تا بسیار زیاد سم میگیرن مخصوصا دفعه نمی و جور کردن که با هم پست کردن و مخصوصا چهار ماکس پست کردن همیشه سم گرفتن همیشه کمک کردن شما مری جان اگر قرار شوه که یک می رفتیم زیارت سخیجان، ساتماتل بود، دید بود زیات بود، فامیلات زیات دادن، و همین کلتورا فعلا هم سعی میکنیم که داشته باشیم. امی کلتورا می خایم پایدار باشه. انتقال به تم زیاتر فعلا سعی میکنیم، گرچه که آسان نیست. فعلا ما در کشور زندگی میکنیم که تقریبا اردو اینجا ما مشغله کاری و فکری خاصی در داریم ولی با وجودی هم به خاطر فشار میاریم که حتما مراسم سنتی نوروز داشته باشیم و اولادای ما بسیار خوش میباشند. آله چی فکر میکنین کدامش زیاتر علاقدان نوروز بسیار جدی مهم است. یعنی بر خود اولاد شما تو میتن از خودن وبس نوروز باشان. ما بسیار مهم است. چاله چاله. فریونا دختر سعید حسین ازغری محصول رشته حقوق بشر در دانشگاه امیه است. پدرم همیشه Paam bi se jedio tak kitme kake sar soleta vil kole gi bi dobošaa va čizikiki iz jodio oddem jez nauruz zastađli naurum i rangoji bi se mo budješaasta hmm. ki Barak se zamas tomo Hazom bi se hokseis amo da bi nauruz zarado gogla obiju koleš mokanš hmm. با امشا مادر من پلار مو امشا گفت آ رختایتون Salena usili ki e ba, raqam bar ma dadil nameshina ya ni rasi a mi nauruzu hodo moski, ki bi šte rimaham mepuskino me da rangovi nošodu. Je ne učizikeemo taždilmeklem da jatum didame šaamo sol nava taždilmeklejem, ma mesela mutarak misaliftam yak <laughs> <Jaj>, mutar ferrari mi hayır mi hayır vas kibird mi Bo falan i like mi hayır bo stombar kasto famiti on netano tu famili. Maaj bo da krismas mi da krismaszi od kalombar hod mii dom valiji. O kalom zaše dom valim با یک دیگه میتفع چیزای مزدار میخوضا میمان میمان میکنم میمان میره کارای مقبول میپشه حالا نو می آمد حالا نو روز آمد حالا نو روز آمد حالا نو روز آمد چشت جمشیدی ماشاد و گلف روز آمد حالا آمد So سبندگان عزیز به پایان برنامه ویژه نوروزی رسیدیم تا ساعت یک بعد از ظهر که برنامه دیگهی خواهیم داشت با شما خداحافظی میکنیم من همایون مروت نیز با شما خداحافظی میکنم و لحظات پر از لبخند براتان آرزو میکنم من محمد عقیلی هم با همی شما خداحافظی میکنم تا همونطور که زینت هاشه میگفت ساعت سیزده و برنامه عادی که از پشباک های چه البته یه بخشی از این برنامه عادی مربوط میشه به گزارش های نوروزی برای کسانی که این برنامه رو نتونستن بشنوند